بهت بسیار خشنگی که میگه چون فری به زبان زبانه دیدم، گوش کردم ولی نش شنیدن یه منیش رفتن صدا تو گوش هست یه من هم قبول کردنه این حرفانه نمیشنه بید. یعنی قبول نمیشنه یا از توش نواهی داره کرک نیستش که حرفان قبول نمیکنه. یه یعنی میگه میگه حرف داشت نرمی میکرد و خورم صدقه میرفته حالا چیز کنه ولی من گوش کردم اما چون به زبان او دیدم گوش کردم ولی ایک نشه چند پوشیدم از سپونت و شهر چند یعنی مقدار سعی کردم جلو خودم رو گیرم پوشش کردم برای سپونت و شهر اما آهانم تیز بود و آتش گرد بختم از دور گفت این آبادان لیست قریه و را آبادان این آبادان که آبادان می و در بلنسل عربی است که اون سوی آبادان قریه ای نیست دیگه و من نمیدونم این مصرا جدید یا قدیم نیست آنسوب ترز آبادان دیگه محروم به خدا یا آورده یا من تو امثال حکم دیدن به هر حال این مسئله معروفی بوده و آن یا عبادان دهی نیست دلیل چند این درست لب آب بوده که بعدش آب بوده است تو چیز نبوده این است که وقتی میخواستن بگن منتهای مراد یا منتهای های یا آخرین وسه آخر خط کجاست میگفتن آن سوی عبادان دهی نیست لی سقریه برای عبادان دیگه من کوشیدم که ساکن بشم شرم بکنم ولی آتشم تیز بود و من هم گفت بابا این طرف عبادان که دیگه دهی نیست الان تو این مراد به دست آمده چرا میذاری؟ فکر میکنه که الان این وقت آمده در خونه من این ماهروی به این زیبایی در اختیار من من چجوری کنم بار دیگه ممکن همچین اتفاق مساعدی نیفته من خام از زیاد اندیشی به کمی رو دادم از بیش اینجا توجه برمید که میگه تمام این مردم شهر آمدن اینو آزمونش کردن همه مردم شهر سیافوشنگ و افزون طلبی موجب میشده اینا رو همه رو چیز بکنه و این یه خاصیت روانی آدمی زاده اون چیزهایی که داره که میذاره کنار میگه اینا که هیچ حالا اینم بگیرن اونا که دارم هیچ حالا این یکیرم به دست بیارن همه چیز بوده میگه خواستم این یکیرم برای دارم میگه من از زیادتاً دیشی یعنی افزون طلبی به کمی افتادم از دیشی و این خاصیتی بوده که تمام این مردم شهر بوده یعنی اینجا نظامی میخواد بینید که این خاصیت فشره نه فقط اون چهار سیاه پوشان که این گرفتاری رو پیده کرد برای اینکه قبلاً دیده که خود همون قصدوبه هم سیاه پوشد این باقی نیگه هم سیاه پوش. ولی خب حتی این فکر نکرده که اینا چ نکنه من یک وقت این لواسیه ها بیرتنم. گفتم سخت کرده کار مرا برد یک بارگی خرار مر صد هزار آدمی در این غم مرد که سوی جنج راه دانت این دانستن و یعنی توانستن راه دانت برد یعنی راه توانت بود. و در حقیقت دانستن و توانستان دو صورت از یک کلمه ست هزار آدمی در این قم مورد میبین که همشه هم آدمی یعنی که آدم اسم خاصه ما الان آدم و انسان بکاریم بیمیم این درست نیست ست هزار آدمی یه نسبت آخرش یعنی منصوب به حضرت آدم ست هزار آدمی در این خم مرد کس گنج راه داند بود خیلی خوب حالا وقتی اینطوری ست هزار نفر مردن که برسن به گنج من که پایم خروش شده دست به گنج دست چون دارم ارچه چه دارم بیگیم حالا که رو گنج روستن چطوری دست اگر اگرچه زحمت بشه اگرچه ناراحت نیست ممکن که تا دمی دارم سر زرفت به درست دارم خلصه میگه من بلکن معله نیستم یا بر این تخت شمع ای من بفروز شمع من بفروز یعنی مراد و کام منو بدون یا بر این تخت شمع ای من بفروز یا چو تختم به چار میخ بدون تخت پایه رو با میخ وحسه میکنه اینه که چهار تفای عامتون داره چه چهار میخید در زم چهار میخ لابت میدونید که برای شکنجه کردن و برای انواع شکنجه های و حتی برای زنده زنده پوست کندن مییتونی میخوانن محکوم رو چار دست پا شد تا میخ محکم می و این رو با تنافع محکم چهار تا مال چه دست پا و اون چهار میخ میوستن و این میدون. یا به پشت، یا به روم، یا تا اغواز، یا دمر میکشیدنش محکم با او باید هر تا میخواستن میکردن یا حالا این داد بزنن اون کار میگن چارمیخ کشتن بعد چارمیخ میکشتن، تازیانه میزدن، شکنجه میکردن، دستخوش میبریدن هر کاری میخواستن بکنن اول او رو به چارمیخ میکشتن که به کلی مقام و تعلیم یا بر این تخت شمع من بپروز، یا چو تختم به چار میخ بدوز یا بر این نت رقص کن برخیز، نت یعنی صفره و فساطه چون فساط هم از بست یعنی گستردنه که فساط یعنی چیزی پن، عرصه و سفره و یه چیزی صد که میگستردن بهش میگن نت یکی از نتایی که می گستردن معمولاً برای کشتن آدم بوده که صفره اینی انداختن معمولاً یا از پوست آدم یا حالا از پوست حیوان روش ریک می ریخنن اون اونیست که تو کبیر هست اون چیز بسیار ریزی که شن بسیار ریز رو بهش می دهن ریک ریک اونه ریک روش برای اینکه گردن باباری که 6 زنن لیت خون به طور مدوسته بدن آدم این میریخته و همه جا رو آلوده می‌کرد. برای می که این ریگ این خون رو میکشته به خودش برای دیگه پخش نمیشد نظامی این که این رو پوسیق میکنه در مخزن و میگه نه ویفکند و برای اون ریگ ریخت دیبز دیوانگیش اینکرد باید ما نمیدونیست یعنی کسی این صحنه ها رو و این مطالب رو تشریح نکرده به طور ما میگه سرش بری ولی نمیگه چجوری و چطور ولی وقتی در حضور شاطور بارگاه در مجلس میخواستن این کار رو بکنن آلوده نباید بشه چیز بشه این ترتیبش این به هر حال میگه یا, نه، یا بر این نت رقص خون برخیز پاشو به قصد دادن مراد من یا دگر خواه خواهو همین که گفتنم خونم دیست دل و جان میگه و همشو بینایی دلوجان جان منی و حوش و بینایی منی حوش یک معنیش مرگه ولی اون معنی خودشم داره که اینجا اون معنی معروف مراده دلو جانی و حوش و بینایی از تو چون باشدم شکیبای چون عداد استفهام و این استفهام انکاریه معنیش اینی که من از تو شکیبایی ندارم گاهی جمله منفی رو به جاش جمعه استقامی میرند یک کسی دیر میاد سر کلاس به جایی اینکه که میگم آقا دیر نیا میگم حالا میان اونم میدونه که چی میگم جواب ده که ببخشیم مثلا اتوبوس نبود سوار شد غرز یکی از تو دلستان یابم رایگان است اگر به جان یابم یعنی در مقابل این کام و مرادی که من میبخشی جان منو بیگیری، تازه مفته چیز کو گنج رایگان مخربت رایگان اون قسمت اولش شنید به راه افتاده ها در حقیقت سر راه افتاده رایگان راه تا راهگان سخت گفتنش کیس کو گنج رایگان نخرد بارزو می کنین به جان نخرد به جان نخرد یه وقت ما میگیم که فلان بلا رو به جون خریدم محصول که قبول کردم به سرم بیاد اما این اینجا این معنی نیده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 چرا چرا وقتی زنده است که می سوز. آدمی وقتی زنده است که می سوزه. این کراک که می خور آدم این حرارت قریضی، حرارت ذاتی که در بدن آدم هست تحتیجه سوخت دیگه تو سوخت ملایمه سوز تو زنده داردن چرا زنده با سوز و مرده هست به داغ یعنی مرده شمکه هست این داغ سوختگی درش می آفتاب بر نگردد از سر سوز تنگ روزی شده تنگی روز البته اینا تحریل شاعران است. میگه اگه آفتابم سوز نداشته باشه و از سر سوز نگرده بازش بد میشه تنگ روزی شدن یعنی چیزی گیرش نمیاد مغز من خفته شد در این چه شکیست خفتم مرده بلکه هر دو یکی میگه ان نومو اخل موت خواب برادر مرگ آدم در موقع خواب مقدار زیادی از توانایی های انتانیش از دست میگه و خلاصه نیمه حالت مرگ دیگه خواب این از که میگه که در این عشق مغز من خوابیده این چه شکلی داره خوابیده اون مرده هر دو نیکیه این نکام است که از تو میگویم خوابی از بحرکیش میگویم میگه من تو رو مراد, مراد یافتن است، تو رو خواب میدیدم. و الان خواب خودم رو دارم میگه این نیست که از تو بخوام، خواب خودم رو دارم میگه گر نه چشمم تو را دیدی، این چنین خوابها کجا دیدی؟ اگه, اگه تو رو من نمیدیدم، کی اینجور خوابها رو میدیدم؟ کی به فکرم میبتاد که اولی هم که آمده بود، نمیخواست میشه رو زمین؟ حالا میگه که ای من تو رو نایده میدهم چون سیال با فیار رو کچون میکردن این خوابار چیزی میده. یعنی در حقیقت این مراد خواهی که چیزه اینو تو در ذهن من گذشتی تو در فکر من گذشتی گر نه روخت مرد تو را دیدی این چنین ها کجا دید گرد برانی که خون من ریزی تیز شوهان این باید خون من بیریزی آماده باش برای که خون من داره تیزی می کنی. یعنی من دیگه اختیار دارم از دست. یعنی برانی که خون من ریزی تیز شوهان که خون کند تیزی بعدم نمونه تیزی خون نشون میده. ده دیگه بانگه از جوش خون و آتش مغز حمله بردم بران چوبسته ی خواستم بدون رضای او، بالاخره او رو در اختیار میدیم. خب، چستیدم اش رو گرفت. نظامی خیلی در شرح عمل جنسی، خیلی خیلی با افتتیم. و خیلی در این حال که همه چیزی میگه، طوری میگه که زشت و بیشرمانه نیست. با الفاظی در نهایت زیبایی ولی در نهایت شنگی میگه و این است که فرق ایروتیزم با پورنگرافی دقیقا همین ایر ایروتیزم شع... سعی میکنه این سحنه های رقبتنگیز و حتی شهبتنگیز و فیز رو بگن ولی با الفاظ بسیار شاعرانه ی از خوشمیمت، از زشتی و با الفاظ قابل گفتم و حالی که در پورنگرافی سعی می کنم که همین رو هرچی چه پرده تر. حتی شدیدتر از اون که در واقع امرم اتفاق می اینو شرح بدن در نوعه چیز کنم که خیلی دلپذیرم به نظر من نیست میگه که اینجا اصطلاح تقاضای اسطلاح رو میگه که هاستن لعل و عقیق رو یعنی لعل و عقیق آگینش بکنم در گنجینه گرفتم زود کار کنم لعل را عقیق آمود زارزوی چنان که بود نداشت خانم آرزوی نداشت در زمین. لابه ها کرد و هیچ سوز دارد. در صبوری بدان نواله نوش محل میخواست میگه برای صبر کردن رسیدن به اون لقمه نونچین نواله یعنی دوتا لقمه الان این لفظ رو برای شطور بکاری میبرن که باید قلوله گندهی بزنم در اون رو میگن نواله ولی نواله از نیله به معنی رسیدنه تناولم از همینه فناول فرمودن یعنی غذا رو رسوندن ب نواله من لغمه گه که برای صبر کردن از اون لغمه شیرین مهلت میخواست محل از میشه مهلت در صبوری بدن نوواه نوش محل میخواست من نکردم تا کجا؟ تا خورت سو خیلی وعد دیگه نزدیک کرد افریش میگفتش که هرچه میخواهی از من از کام است جز یکی آرزو که آن خام هست میگفته نیست اصلا بعد اینجا در نجای اصراره این و گرفتن این دیگه میرسونه مدت به حداقل ممکن خورد سوگند این قزینه پراست امشب امید و کامدل دل پرداست فکر کرد هیچ فکر کردیم که سوگند و چه میگم خوردن محروم پردا بود یه مقاله مفصلی در این با توی تفسیر یه اشتخاص اینجا این مطلب میگه که در مقام کشف راستی و در کسی آزمایش های خیلی خیلی سخت میکنه یکی از اون آزمایش همونیست سی که برای سیاوش میکنه سیاوش بگیده از پوه آتش تو تا پوه آتش تا طرف بوده که تا پرسنگ ها دیده نیشده و از وسط شکره دو تا یه چهار تا سوار می کنوستن و چند بگه اینو باید بره از این حتش می را بهش می گفتن ور یکی دیگهش که خوردن از اینه سوگند خوردن این از اینکه میگه نوع آب دردی قطوی غیر قابل خوردنی رو میدادن به کسی که میخواست سوگند بخوره اینو بخوره و این اگر حالش به هم میخورد و قسطون میکرد و اینو بالا می آورد گناهکار اگر این آب حال رو به هم نمیزد این گناهکار به این دلیل شده سوگند خوردن خورد سوگند این خزینه تو امشب امید و حام دل فرده امشبی بر امید گنج به ساز شب فردا ها حزینه می فرده گفتن بارها وعنی خالی کردنه. میگه من دل از مهر تو با غیر نفرداختن. دل از مهر تو نفرداختن. یعنی مهر تو از دلم خالی نکردن. من دل از مهرتو تو با غیر نپرداختم نازنی نا تو دل از ما به که پرداختی پرداختن از یعنی خالی کردن پرداختن بی یعنی پر کردن سبر کردن شبیه محالی نیست آخرم شبیه سالی نیست. میگه او همی گفته من تو دشنه در کمر کرده ده راوی میگن کورا کورا چیزی رو نمی بینم نمی بینم اگه کسی رو می خواهم یک کارش درم یک می ولش نمی کنم یعنی سخت می کسمنش که دست رو در, در, در, در, در, در, در, در, در او داد طرف رفته بگید او همی گفته من تو دشنه تیز در کمر کرده یعنی در کمر او کرده دست کوراویز خواهشی کنز به خود می کرد خارشم را یکی به سطح هرچه اون بیشتر عضو میخواست بیشتر خواهش میکرد من بیشتر تعریف میخواستم تا به جامجار چستستی که دادم بند بسته در چون که دیدون ستیزکاری من ناشکیدی و قراری من گفت یک لحظه دیده را در تا گشایم برای خزینه هم بیشت هم من آماده بشه چون گشادم بران داری رای در پرم گیر و دیده را به که من آماده شدم اون هر که بود من به شیرینی بحانه او دیده بر از خزانه او چون یکی لحظه محلتش دادم گف بکش آنیده گف شادم کردم آهنگ آه بر امیدش و که در عروس عروض را به کنار چون که سوی عروس خود بیدم تشتن با این سرنوشت آدمی همینجور دا هم دنبال از طلبی یه وقتی شوازه کنید یه سود یا علی مرگیس. هیچ کس گرده من نه از من مون مثل هم با گرم چون ساه نگید به طاقش مون تو که تو تازی که که اینجا باشه گفت که تو چیه به که اسما نازن این توت. توت. خب منم اتفاقاً اسمم توستاز شاه است که لیفید توستازی از توستازی من در این وسوسه ناراحتم گفتم بله بنده بنده ثبت من در این وصفصهی که زیر سکون جن بشی زن ثبت کشاب یار و زن بلند سبدم را رسند کشاب که رسول بالا اون صناف رسول تا چیزی اونجا رسول تا کارش که ایک آسون بشه یکی دیدم هم آدم اومد و مثل که خبرم میکرده اون که میاد که دوستان میدونستان که اون رسول تربت برمیگرده اینجا آمد و صناف از سر وا کرد و داد بالاش یه آمدم یاروزان رواغ بلند تبدم را رفتن و شاق ببند بعد از فهام سیر آمد تبدم آنکه که از من کنار کرد و گریخت اول گفت بفت این چرا کار کرد؟ شاید که مال من بودم گفت چرا چرا اینکار کرد؟ خلان بعد اون کسی که از من قرار کرد و رفت و تناب وست و رفت دیگه میگه آن که از من کناره کرد و بریخ در کنارم گرفت و ازرنگی دوستاداش حالا جمعاید پایین اگه من 100 سال میپاسم بگم به تو یه راز از سیاه پوشید مردم که تو حاضر بودی قبول کنی قبول باورت بنیمد گفت اگر این تو را 100 سال باورت نامدی حضید رفتا رفتی و دیدی آنچه بود نه، این چنین فسته باستی شاید بود بخواه. باید برید ببین میگن تصفف علم حاله علم قال نیست یعنی صوفی باید اون حال خودش درک رو کنید هرچی بخواد بگی که این میشه این نمیشه بسیاری از کیفیات ساده روانی هست اینطور. شما طعم شیری رو بیاده میخوایم بگیم چی نمیشه هر هرچی بخوام بگیم او یه خیال دیگه میکنه او از میون چیزایی که دیده میگرده نظری برای اون پیدو کنید رختی رو دیدی آنچن نهو اینچنین قصه با که شاید من در این جوش گرم گوشیدم و از تظلم سیاه گفتم بیا گفتمش که چومن ستم دیده این که خانم بلا من قبلن اومده که لباسی بیا یاد گفتمش که چومن ستم دیده راه تو بیش من خفن دیده من ستم دیده را به خاموشی نابضی رفت از این رو فرند سیاه پیش منو رفت آور پیش من شب چهار لباسم تغییر کرد قبلا در سفر افتند به اون فرند سیاه هم در آن شب بسیج کردن راه پستیجیدن یعنی آماده شدن سوی شهر خود آمدم دل بر خود افتنده از سیا بیرون من که شاه سیاه فسانم تون بیا ادب از آن بود که از چنان فختوار دوز به کام دور گشتم به آورد حالا شما برگردید تو زندگی خورتون نگاه رو کنید در این چند سکت برای آرزوی خامی از آرزوی فخته باز میگید پس چنان فخته آرزوی به خام دول گشتن به آرزوی تان. اینجا قصه شاه تمام بعد اون کنیز سیافوش اگه یادتون باشه میگه دفتر میگه که یک خانم در قصف ما میمارد همیشن نباس سی ها بود گفتیم چرا نباس سی هست؟ که من کنیز پران ملک بودن که از اون گرچمار خوش نزن اصلا هم که میگه چون خداوند من خانم میگه اون خداوند من زرازم هفت این هکایت زیج من برگفت من که بودم درم خریده او برگذیدم همان گذیده ای. من هم او بعد باقیش در وسط در امتیاز رنگ سیاهه برای اینکه هر شبی که بهرام میده در هر هر رنگی که هست اون مانوی که اون قسطره میگه اون قسطه آخرش میرسه اون رنگ و اون مانو میگه که این رنگ از رنگایی دیگه بهتره اون که صورت هم میگه صورت هسته آبی علاقه اینجا شروع کرد این بحث یه راجبه عم اصل قصه دختر قاجا هند داره میگه برای بهرام دیگه این چیزی کرد؟ اول دختر سر قاجا هند دیگه. بعد یه خانم میاد بعد یه اون خانم به ما این کرده خانم میگه شو این طور کو علتن بعد شو اول گذاشتن بعد خانم تست داشتامو شده بعد دختر رو تست داشتن برای بهرام دختر نتیجه میگیره که بس سیاهی رنگ است، این داویش اونه با سکندرز بحر آب حیات رفت من در سیاهی زور که آب و حیات در زور ما. در سیاهی شکوه دارد ماه. شب آسمون که تاریخ پشه کاملا ماه جلبه دارد. چطر سلطان از آن کنند سیاه. چتر پادشاه سیاه. هیچ رنگی و سیاهی نیست. بارها گفتن بالتر سیاهی رنگی. دعا ماهی چه پشت ماهی نیست. درست ماهی ارتخان ماهی است پشت ماهی سیاه و ارتخان به سفید و پشت سیاه به از از جوانی بفت سیه و سیاهی بفت جوانگویی ارتخانی درست دادن سیاه، یک صورتش آب در جوانی داریم. به سیاهی بسر جهان بیدنر اون نینی چشمی اون مردم که چشمی بیدقیقت این سوراخه سوراخه و سیاهه از اون سوراخ سیاه چشم میکنی دنیا رو بیدیم به سیاهی بسر جهان دین چرکنی بر سیاه نمیشینه راست میگه آدم سیاه چرکی که جمعه کنون حلوم نیستشه کسانی که یک خود رنگشون سیره میگنی این چرکا به گرنه سیفور بشب سیفور نوعی شب عبیشن جدی کیسز اووار ماه ماه یه شب هست باهاریه میشه تخت روان برای ماه اگر این حریر شب سیاه رنگ نبود که ماه رو در تخت خودش نمیداشت هفت رنگ از زیر هفت و رنگ هفت و رنگ اسم فارسی فنات النشه هفت, هفت, و هفت اسم و رنگ داره هفت و رنگ رو هر ماه نش میگن اسم هفتشان رنگ جو مرحوم بعید دیدین منظور اینه هفت رنگ آفتابن گشت زیر هفت رنگ یعنی زیر این آفتابن جوون هفت رنگ دید بره. و با حیرت این است که طیف خورشید رو وقتی دیدیم گفتن هفت. رنگ. قرمز و نارنجی و زرد و سبز و، آبی و، میلی و قرم. آفتابن از زیر هفت رنگ نیست، بالاتر از سیاہ دیدن. شون که بانوی ه با پخران با باز پرداست میپند تمام شهر بران دخته آخرین ها گفت در کنارش گرفت توشاده بود اینجا